دوست دارم حرف کار رو ببریم پیش زنم آره منم خوشم بمیاد حرف کار و پول و درآمد بین خودم بین خودم من حقوق نمیگیرم تو بگو بیس سال فکرامو کردم یه بخور نمیره ازد میگیرم بقیهش نمونه می پیش خودت انقدر که بتونم این سدونگ گجاره رو بخرم کم با من کم و کست نمیارم کم کوردن و گرد خوابیدن و واسه همین گذاشتن دیگه رو هم جمشه این سدونگ رو میکرم ایشالله ایشالله تو که را کووید آره تو کدومش زنش یه اش جون با هم در مینیم میج میخندیم Mek referred on kaks. Surab, allah! Gragei va編 siiivanih. Siis, plani juu. Pakaar jaot? Pohra. Kul현ir kvabatide? Ahlan <laughs> Ahlan <laughs> <laughs> سلام سلام سلام آراو میدونست هم اینجا تو رو نه پس خبرا زیاد و مابی خبری؟ بیخبریت ماده امروز نیست اه خب خبردارم کن بابا بوستان همه این سالا راست میگفته پولش دسته چاوش بوده خبر تازه چی داری؟ اینه که یه عمره داست. سر به بیامون گذاشتی دادشی میگفتی لیلام اینجاست هنیفو بردش برسیدم سر به بیامون چرا گذاشتی؟ بس خیلی خونگاه این چه خیریه که مهمونه رسولت کرده؟ منم واسه خیر خانواده اینجا. یکی یک یکی دارم سوال میکنم. چرا صبانی؟ دلشوره دارم، من صبانی نیستم. دلشوره چی؟ این چه آرزوی لیلا ده आवाज کنه؟ شری رو بده دشی که اینجوری گوشنشی کردی لیلا بقل گوشت خونده آتفه توروم قرار نیست بایستیو بشینی گناه چا باشه بشوری راست گفته منظورت راست گفتن منی یا لیلا لیلا پس روباه شدیا و شیره لیلا راست میگه را بریم حرف بزنیم این ماجره بریم حرف بزنیم آتفه جان اندهاشم خراب نمیکنم کنم پای دادگاه و شکایت واسه چابش وسط نمیکشم کشم با جانم معذبه ولی تا یه جایی میرم جلو تا جایی که اونا به حقشون برسن حقشون اندازه اینی که من دارم یعنی چی؟ یعنی این گوش به اون گوش نمیرسه رسن میریم پیش کریم گوستان واقعیتو میگم قرآن میذاریم وسط قرآن میذار وسط که نه دوست از واقعیت با خبرشه نه دشمن. یه موتور دارم ماشین دارم صدام حجه دارم که عنیف خریدارشه به نامشون نمی که هر روز موهی هاشم داشم بشن پولش میکنم میدم دستشون دستشونم میوزم میخوام گذشتم گذشتم با کرم بوستانی بشنم که گذشتم بدری حلال بدری آوغتتون دنیا به خیر بدری چیزی جا نافتاد؟ غم نگو. چیز جا افتاده؟ نه. خوده. خودمون. جا نافتادم. هم نیم به درد هم نیم خوری دلم میذارم که حتی یه درصدم چابش نگواز خاطر لیلا رفت وقتی آراز با تو گفتی یعنی دیگه مول درزش نمیره نه؟ با آقایت تو نیکی همه پیس ساله بهش عادت کردن حق بودن چابوش بشین خم این عادت غلط بوده از این اینجای باید لاکش گرفت غلط و لاک نمیگیرم چرا؟ میگیرم بدتری پرونده تو دادگاه باختی باختم بلد نبودی زرورق دست گرفتی حالا هراین دود نکن که هراین دود بکن لاکت گرفتم گذاشتمت کنار ها پا به پاد نشستم از خماریت خمار شدم از درد کشیدمت درد کشیدم بدنت سیم کشی میکردت بدنم هنگار سیم کشی میکردن رسود لکت گرفتم یا اسم تو هر روی تیکه کاغذ محرمیت شیرینی خوردم و تو شناستامم آوردم و شدم عقدت شدم عقدت لکت گرفتم من عشقم رو لاکش نگرفتم برادرم رو لاکش نمیدیرم لیلا هر کی که از هر جور هر چیزی که میخواد داشت نمیتونه بخونه،, بخونه بخونه بخونه انقدر که آراز آبروی دادش بزرگش رو سر ببره مال مردم رو خورده آبرو داره؟ واسه من داره واسه من نداره تا وقتی نداشتم واسه تو از هم جدامو نکنه من مشکلی ندارم باش آراز لام تا کام لام تا کام دهن باز اینجوری حلش کردیم که دیگه فسفس مار نشندم تو گوشه داداشم قیمتی تو ولی نه به انداز قیمت آبری داداشم و خونه خونوادم دارم بد نگات میکنم لیلا بد بد یعنی چی؟ یعنی واسه خودت دشمن نتراش آتفه رو دشمن خودت نکن به بگو دنبال ماشین من و رسول گاز بده تا تهران چه شد؟ من اینجا محتب منو نگاه کن چون اینجا خب میدین؟ چی شده؟ بابت ازت دلخوره؟ از هر دری میگذشت هر گفتی رو باز میکرد بود من چهرهش رو نمی ولی میدونستم تو خواب باات عصبانی بود خشکی بود خوری؟ نه نه آمند خوب واقعا؟ نه چی بابا دزت دلخوره خوره؟ چی دلخوره خوره بابا دل خور تاله شده موضوعی که بین تو و حات از عزت بپرسم؟ واقعا؟ نه. واقعا؟ هیچ جور حل شدنی نیست. چراگه یه دوشونو پس بگیرن چرا حل نشه؟ حل میشو. بابت که مدرکی ازش نمونده. همه هم میگن بوستان دروغ نیست. حالا که دروغو در اومده. دروغو در اومده دیگه. چیه <تصح> <تصح> <تصح> سر لچ می افتیم. دروغ میگه مهدا دروغ میگه جان من حسان چیه مثلا؟ جان من انقدری مسئله بر مهم شده پرشون خوابم هم. من به این اعتقادی ندارم شاید بابا شاید نداره من یه چک دادم به ستار اونم قبول کرده همه این سال ها اینا شو بوده سیابازی بوده قبول کردن توقعی دیگه ای داشتی؟ من هشخ به تو شک نداشتم تو رو بیشتر از این خواب باور دارم برو برو بشیم مرا شیر رو داخت کنم بابات مرده از ثبانی بود؟ اونقدر ثبانی تو خواب دنبالم میکرس که ترسیده بودم ترس که میگم ترسا میتونستم با من کاری نداره یه حسی به این میگو با تو کاری نداره خب ترسیده بودم دیگه و از احل کابوس نیستم انگار دنبال تو میگشت تو خونه خواب عجیبی حس بیکردم اگه پیدات کنه میکشته واقعا عجیب Just yar Cette ceux qui perdant. She, come on put شاید تون سلام کردن یادت دادن ولی یاد نگرفتی سلام از کردم شاید هم چون انبال مردم آتیش میزنی شاید هم کنی تیاتر امشبتون به درد عمتون میخوره هر ور با کریم وستان تو میدون را رد؟ اون شرده از را می نواخر کنون برخطی وستان می دونه تو تو میدون پیچیده که چاوش چلو می رفته و سر داره و سره من که خیلی خرکوی پشم چون چی؟ من؟ شنافتی میگن گن توکل خله با خودش حرف میزنه. این همه آدم عاقل و باله بس یک کم پل باشه با خودش حرف بزنه بشینه تهنائی بازی کنه سل بزنه به گل آتیش تا خاک سر باشه باه دیگه آق بلی این خلحالشه وقتی کریم بوستان نیست و بچهش پشت سر را میره حتما یه جای کار میلنگه نه؟ غریبیه چواباشم این بسکت داریشم اه بار چوجه آتوش به با انبار مردم میزنی تنه من غریبم برمیلیم از لوقت آت... تو چواباش را توی شهر بودن من ندارد شهر شهر من بودم همه همه شهروری نبود تو از شهر شد چه میپهمی چه میدونی غلاف کردن و ترک و توبه و برگشتن نونو حلا خوردن یعنی چه از شهر رو سور ببن نکنم تو اونشو دادم تو اونشو دادم که راه میرم و با خودم حرف بزنم اگه خاصی بدونی شرور بودم اونم به شکل قدیمیش یعنی چیه راست میگی یه بار دیگه قبایی ازید و بپوشو تو این میلیون مزلوم کسی کن. تا بهت بگم که تنه کیه شرور چیه؟ شراحت چیه با اینا قاینا دارم درست یا غلط من شریم بوستان و مزلوم میدونم با شما ها رو ظالم عکسش ثابت شد چی؟ عکسه الان کریم بوستان میگه را رفتنه بچهشه شب تو میدون از سر جبران بوده یا تجمیح یا آهده همجا باش علام میام سلام آمچی سلام خیر باشه این مخت شب بگوید تو دیگر خودم خواستم نیاد باز مرافت شده. چطور ممنون خوبی به رسول گفتم تو ماشین بمونه چون حرفای خواهر برادری داریم تو خونه خودت ازت بخوام اینجا نباشی وسط حرفای خواهر برادری بتر بر می‌خوره؟ لاقل امشب نه، بر نمی‌خوره امشب شب خاصیه؟ تو بهش بگو امشب کلک این تومت چند سال کنده شد چک صدقه دادم به ستار تو میدون پشتم را رفت هم هم دیدم تومت بوده حرفشون عجب پس گربه بوده این همه سال برمان کرشتنه مال مردم خور بچه بودیم یادته همیشه ساله این بودش که دوزه چشکلی هم آقا ما میگفت شکل ما مثل ما تو خود ما انقدر شکل ما که دیده نمیشد یادته؟ نه یادم نیست حالا یه نشونی میدم که یادت بیفته خب هر رسفنم وقتشی که بگی بالا داشت. بریم اون بر چابجی رو گور گرفتی. رسول اون اونور کاشتی معفرداریی تو حال چی شده امشب؟ اون شب یادته؟ بعد خاستگاری آراز و ایلا تو خونه ب چی گفتن؟ گفتم ببین داداش. اگه روزی روزگاری بفهمم راستو حسینی این دعقا نبودی دق میکنم دور از جون یادته؟ یادته؟ بله امشب وقت دخت گردنمه اگه بهت بگم دور از شون سانداد میزنی چک دادی نمایش را دختی تو میدونه را؟ چه نمایشی بابا نمایش چیه؟ سطر خودش اومد گردن کش کرد با حق با شماست دست ما رو بگی منم گرفتم گرفت؟ گرفت کشاش باز بود؟ بود انقدر باز که خاکستر کاغذ مهر آقامونو چی قندونه روی میزت ببینه؟ آراز مغر اومده. میتلی بوستانه خونواداش چی کشیدن تو این همه سال؟ مابوز آقامون چی کشیده تو برزخ آقا چی اومدی اینجا منکر نشه که منکر خوهر برادریمون میشم منکر چی میشی منکر چی میشی این که همه چیزمون دادم برای شما همه چیز خودت یه آخرت آقامونو خواستیمو گذاشتی خیرت مگه به خواست خوهر برادری آراز آراز تمومه بسنان از یون نگو از یون نگو گفت کاغز و موس گفت چه چیز دیگه هم گفت کاغز و موس سوزوندن میاد دیگه باقی چیزا مهم نیست گفت آخ جون یسو همینطوری که بستمنده بود چرت دیگه به گفت قرار بود چه صد بدین به کریم روستان بابات تمام این سالا فداکی که واسه آقامون من گفتم که گفت قرار بود ماده شاگردون الدن صد در تو قرباتن اناسون گفت دیگه حظ ندارم وقتی آقامون همنده بود گفت تمام این سالا هم تو فکر من بوده خواب و خوراکم و تیجه تیجه کرده هلکی به ما حتی به خوابه تقاطی ندارم گفت التماسشو کردم گفت التماسشو کردم گفتم راست داره برادرت بشه <smo> که اگه دهن باز کنی به بیابه روی من برادرمون پر میشه این خود میشه وقتی نباید بشنوی میشنوی نگام کن قرار حقیقت دفت بشه امادم گوششو بگیرم تمومش کنم خاک بریزم روش که تشمن شاد نشیم با تو <تصفيق> کجایی با تو هم قرار نزد کریم جلوتر بره حتی از خالم نه ستارم نه کریم مرد قدیمه حرفش حرفه قولش قول گل براش میذارم و ست که مالشو جبران کنن ولی از این گوش به اون گوش نمیرس فهمیدی عزیزم؟ من از پول سرشش ندارم از حلال هروم سر رشته ندارم اما از یه چیز سر رشته دارم وقتی میگی جون مهدابو در بیاد آره آره باید این گوش به اون گوش نرسه به بابام میرسه بابام داراست به این که بدهی و نفرین پشتش باشه نوک زبونش قسم دروغ باشه دوست دارم دوست دارم علکی ورد زبونش باشه این بعد به شخر بد نگاه کنه. داداش جا باش داداش هزار بار اخم امت کنش نمیداد اخم تو فرستاد شنبال برادرش اخم نبود گلگی زن و شوهری بودا تو فجوم فالگوش وای نمیسده به گلگی زن و شوهری نمیرسید فالگوش زندگی وای نهست اما پیچه خانوم بولی کریم مستانی بربر شده لنگش بزن دیگه تو شده؟ شما که حلال میدونی حرام میدونی چرا میگی باز نمیشه صدای بچه توی این خونه کجاست تختش کجاست جغجغش کجاست از بیمیدی آهو ناله مردم پشه نبوده بچه تو این خونه نباشه اگه این علفت خانوم نبود من این مالو دونه کفتر میکردم ای با چیدم تو سعنه امام رضا تو چیکن کردی با من؟ فقط کنگوابه کریم میدونم بیشه محضوب خیلی کن کردی و من خواهد صبح میلا زنم به سوی برد بگم پس خاطر به نختر کریم بستان دعا شد و فروختی تغییر ردش شدم داره ساکت بودم ولی از این به بردی خواهد کنگوه دشم سه هم برده کشم آقای وقت خبول کردن کریم بستان و چرخوندنش تو میلونه آجور ببینم؟ اگه من دو ماله جورت بودم باست بودم که جلوه بابا میگی زدم تو گوش ستار گفتم چک وعدی ماله چا باشه بفرمون من در فکرمتم تنها میمانم میدانم میآیم با تو آرامم بیترسست تنها هم هام می مانم آشفت چون او در زی